بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بخشندهی مهبان اقتربت الساعت و انشق القمر قیامت نزدیک شد و ما شگاه تشد و این یرو آیتن یعرضو و یکولو سحرم و هرگاه نشانه و معجزه را ببینند اعراض کرده می گویند این سهر مستمد و کذبون و تبعون و امر مستقب. آنها تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر عمر قرارگاهی دارد و قد جاءهم من الانبای ما فیه مزدجر به اندازه کافی برای انزجار از بدیها اخبار به آنها رسیده است حکمت بالغه فما این آیات حکمت بالغه ای اما انذارها مفید نیست فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ بنابراین از آنها روی گردان بر روزی را بیادا که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشدناک دعوت می کند عن ابطارهم من الاجداف که جراد آنها از قبرها خارج می شوند در حالی که چشم شان از وحشت زیر افتاده و همچون منخهای فراگنده به هر سو بند محبعین الى یقول الكافرون هذا يوم در حالی که به سوی این دعوت کننده گردن می کشند و کافران می گو امروز روز سخت و دارتناکید كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا مجنون نوح آره ما نوح را تکذیب کرده و گفتند او دیوانه و با او را داشتند فدا رب مغلوب او به درگاه پروردگار ارزه داشت من مغلوب شدم انتقام مرازانها بیگی. ففتحنا ابواب السمائی بمائی منهمت و بجرنا الاضعیون فالتقلنا و لا قدر قدر. در این هنگام برهای آسمان را گشودیم و آب فروان و پی بر پی فرو و زمین را شگاه و چشمه های زیادی بیرون فرستادیم و این دو آب به اندازهای که مقدر بود با هم درآمیختند و, و, الواح و او را بر مرکبی که از الواح و میقهای ساخته شده بود تجریب اعیوننا جزاء لمن مرکبی که سهت نظارت ما حرکت می این کیفر بود برای کسانی که به او کافر شدند فهل ما این ماجرا را به عنوان نشانه درمیان امت ها باقی گذاردیم آیا کافی هست که پندیرد؟ فکیف کان عذابی و عذاب و انذارهای من چگونه بود؟ ولقد یستون للذکر فهل من مدکت ما قرآن را برای تذکر آسان تاستیم آیا کسی هست که متذکر شود؟ قوم نیز بر خود را تکزید کردم اکنون ببینید عذاب و انذار خواهی من چگونه بود؟ ماتن و اسلنا عليهم ريحا صبصرا في يوم و سردی را در يک روز شون مستمر بر آنهار فرستادين كن زيننا كأنهم اعجاز نقلم قائد کما تمرهم چون تنهای نخلی شکن شده از جا بر میکند وکیف اکنون ببینید عذاب و من چگونه بود ولقد یسرن القرآن للذكر فهلم ما قرآن را برای یتذکر آسان کسیم آیا کسی حق متذکر شود بالنذر طوسی سمود نیز انظار حل را تصدیق کردند فقالوا گفتند آیا ما بشری از جنس خود پیروی میکنیم اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود فَأُلْقِيَ الزِبْتُ وَعَلَيْهِ مِن بَيْنِ نَابَلْءُ وَكَذَّابٌ اَشِد آیا از میان ما تنها بر این مرد بحثی نازل شده؟ نه نا. او آدم بسیار دروغگوی حوثبازی سیع لگون غدم من الكذاب الاشد ولی فردا می فهمند چه کسی دروغگوی حوثباز است ان مرسل الناقه فتنه برای آزمایش آنها میفرستیم. در انتظار پایان کار آنها باش و صبر کن و ند ان الماء قسمت بینهم و به آنها خبر ده که آب باید در میان آنها تقسیم شود یک روز سهم ناقه و یک روز برای آنها و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند کل نوشرب محتضر فنادو صاحبهم و آنها یکی از یاران خود را صدا زدند او به سراغ این کار آمد و ناقه را پی کرد اکنون بنگرید عذاب و انظارهای من چگونه بود بیگمان ما بر ایشان آواز شدیدی را فرستادیم و ایشان چون گیاهان خوشک که در ای شدند ولقد يَسْتَوْنَ القرآن لِلزِّكْ فهل من ما با واقع قرآن را به منظور فهم گرفتن آسان ساختیم پس آیا فان فزیر حد قذبت قوم لوطین قوم لوط را تقریب کردن اِنَّا الا ما آل بر آنها تانبادی که ریکها را به حرکت درمی آورد فرستادیم بس جوز خاندان لوتزا که سهرگاهان آنها را نجاب دادیم نعمت من عندنا کذالک نجدی من شکر این نعمتی بود از نحجه ما این گونه کسی را که شاک گذار است تاداش می دهیم او آنها را در مورد مجازات ما انظار کرد ولی آنها اصرار بر مجادله داشتند ولقد فطمتنا اعیونهم فذوقو عذابی و ندر انها لود خواستند مهمانانش را در اختیار آنان بکارد ولی ما چشمانشان را نابینا و محبه کردیم و گفتیم بچشید عذاب و انذارهای مرا ولقد قبحهم بکرتا عذاب مستقف سرانجام صافگاهان در اول روز عذابی مستمر و ثابت به سراغشان آمد و, و با گفتیم اکنون بچشید عذاب و انذارهای مرا ما قرآن را برای یادآوری آسان کردیم آیا کسی هست که متذکر شود؟ انزارها و یکی پس از دیگری برای آل فرعون آمد اما آنها همه آیات ما را تکذیب کردند و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم معاهده قدرتمند بهتبانا اقف تارسون خیر من اولایکم املک برا ارسم فی الذر آیا کفار شما بهتر از اینها هستند یا برای شما اما نامه‌ای در کتب آسمانی نازل شود ام يقولون نحن جميعا انصت یا می گویند ما جماعت متحد و نیرومند و پیروزی الجمع و ولی بدانند جمعشان به زودی شکست میخورد و پا به فرار می کتارند بلی ساعت و امر. رستاخیز موعد آنها و مجازات قیامت حضناتر و تغتر است این المجرمين في نفی باللی مو مجرمان در گمراهی و شغله ها ی آتشان یا او میوس حونت بین نریالگویگوکومتصف دراماندرووز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می شوندد و با آنها گفته می شود بششید آتش دوزخداد؟ اِنَّا كل شَيْءٍ خلقناه بِقَدَرٍ بگمان ما هر چیزی را به اندازه آخری دیم وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَتٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرٍ و فرمان ما یک عمر بیش نیست همچون یک چشم برهم زدن اهلتنی فعلیم مکت ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند خلف کردیم آیا کسی هست که متذکر شود؟ باقلوش این سال و هر کاری را انجام دادند در نامه های اعماشان ثبت است؟ فکل هر کار کوچک و بزرگ نوشته می شود ان جنات و در باغها و نعم ثوی بهشتی جای دارند نیم پار مقتدر در جایگاه ثقت نزد خداوند مالک مقتدر